داستان آواره جهان یکی بود یکی نبود مادر بیوهی بود که دو تا دختر و یه پسر داشت اسم پسرش پپی بود ارزه یه لغم نون در هم نداشت مادر و خوهراش هم نخ می رسیدن. یه روز پپی به مادرش گفت مادر میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام از اجازه بگیرم و رابی بیفتم برم دور دنیا رو بگردم. بلاخره رفت. رفت و رفت تا رسید به یه مزرعه. از مزرعی دار پرسید شما شاگرده میخوایم؟ صاحب مزرعه همون موقع سگاشو صدا کرد و سرگاش هم پارس کنن تپی رو دنبال کردن. تپی از ترس پا به فرار گذاشت. رفت و رفت تا رسید به یه مزرعه دیگه هوا داشت تاریک میشد پپی رفت جلو با مرد مزرعهدار سلام و علیک کرد بهشون گفت شما شاگرد میخواین مزرعیدار گفت او بله بفرمایید گاوچرون ما میخاد از اینجا بره صبر کنید تا برم از اربابم سوال کنم یه نفر رفت بالا تا از ارباب بپرسه. ارباب گفت آره بهش غذا بدین وقتی اومدم پایین در صحبت میکنیم. اونا یه تیکنون و یه بشقاب کشت گذاشتن جلوی پپی. اونم چون خیلی گشنش بود مشغول خوردن شد. ارباب وقتی اومد پایین رفت پیش گافچرون و بهش گفت راسته که میخوای بری؟ گافچرون هم گفت بعد قربان. اون وقت ارباب به پپی گفت از فردا صبح تو باید گابها رو ببری به صحرا. اما گوش کن پسر جون. اگه میخوای اینجا بمونی ما فقط غذای ساده داریم. چیز دیگه ای نداریم. پپی هم گفت باشه قبوله هرچی که خدا بخواه همون میشه. پپی شب رو به صبح رسوند. موقع صبحونه نون و پنی رو با خودش برداشت و با گاواش رفتن تو صحرا برای چرا. پپی روزها رو با گاوا گذروند و شبان برمی خونه. جشن کارناوال نزدیک شده بود. پپی با لبولوچه آویزون اون روز برگشت خونه. مباشر بهش گفت پپی چت شده؟ پفیان با ناراحتی جواب داد هیچی. چی. مباشر دوباره گفت صبح همچین با سگرمه‌های در هم با گاوا رفتی بیرون که به اربابم برخورد. هیچ چی نشده. مباشر دوباره گفت حتما یه اتفاقی افتاده ولی تو نمیخوای به من بگی. چی دارم بهتون بگم؟ داره کارناوال را میفته و امسالم من پول ندارم تا باش برای مادرم و خواهرام جشن بگیرم. مباشر جواب داد. آخ آخ آخ. از هرچی میخوای به هم بگو الا پول. هر چقدر که بخوای بهت نون میدم. اما پول ندارم که بهت بدم. پپیه بیچاره گفت. اگه مجبور باشم یکم گوش بخرم چیکار باید بکنم؟ نمیدونم چی باید بهت بگم ولی ما قبلا قرار مدارمونو با هم گذاشتیم پپی. صبح روز بعد پپی همونطور پکر و ناراحت با گاواش را افتاد تو صحرا یه های صدایی شنید. به اطراف نگاه کرد. فکرت خیالاتی شده. اما بازم صدا رو شنید. انگار یه نفر داشت صداش میکرد. پپی؟, پپی؟ پپی؟ پپی گفت، آخه کی داره منو صدا میکنه؟ همون موقع یه گاو روش و برگردوند به طرف پپی و گفت، من دارم صدات میکنم. پپی با تعجب به گاو نگاه کرد و گفت، تو میتونی حرف بزنی؟ معلومه که میتونم حرف بزنم. چیه انقدر لبولوچهات آویزونه؟ پپی هم گفت. آخه جشن کارناوال داره راه میفته ارباب بهم هیچ پووری نمیده گاف به پپی گفت گوش کن ببین چی بهت میگم امشب وقتی رفتی خونه؟ این حرفایی که من بهت میزنمو باید به ارباب بگی باید بهش بگی که گاو پی رو بهت بده ارباب چش نداره منو ببینه چون هیچ وقت نخواستم براش کار کنم واسه همین حتما منو به تو میده پپی اون شب مثل برج زهرمار برگشت خونه. ارباب وقتی پپی رو دید بهش گفت چه پپی؟ چرا مثل برج زهرمار میمونی؟ پپی گفت یه چیزی باید بهتون بگم ارباب. اگه شما اون گاوه پیرو که حتی از جغت هم پیرتر به من بدین لاغل میتونم وقتی برگشتم خونه واسه یه جشن کارناوا سرشو ببرم و بذارم گوشت چغرش یکم نرم بشه و برای مادرم و خواهرم جشن بگیرم عرباب گفت اون مال تو تازه یه تنابم بهت میدم تا با خودت ببریش فردا صبح پپی گاو و خورجین و هشتا نوم برداشت و کلاه به سر رفت به سمت روسای خودشون توی زمین خیلی بزرگ دو تا کشاوز رو را از راه دور دید که دارم به سمتش میان اونو با صدای بلند فریاد میزنن. گاوه نر، گاوه نر، موازه به خودتون باشین. یه گاوه نر داره میاد. الان شما رو میکشه. گاوه پیر آروم به تپی گفت. بهشون بگو من الان میتونم اونو براتون بگیرم. تپی همین حرفا رو به اون دوتا کشاورز گفت. دوتا کشاورز هم بهش گفتن چرا که نه. اما ما میدونیم که تو نمیتونی. اون تو رو هم میکشه. گاو پید پپی پی گفت: پپی پشتم سوار شو و نترس گاونر با سوراخ دماغای باز شاخ به شاخ گاو مجب جلو شروع کردم به هل دادن همدیگه گاوه پیر اونقدر قولچماغ بود که گاونر یکم بعد از نفس افتاد گاوه پیر گفت: پپی پی اونو بگیرشو شاخش رو به به شاخ من پپی هم همین کارو کرد از اون دو تا کشابرس خداحافظی کردند و به راه خودشون ادامه دادند. اونو رفتن تا رسیدن به یه روستا. از مردم اونجا شنیدن که به هم میگفتن هرکس بتونه یه زمین بزرگ رو تو یه روز شخم بزنه و تموم کنه دختر پادشاه زنش میشه. اما اگه زن داشته باشه دو کپه تلا میگیره. ولی اگه از پس این کار بر نیاد سر شویواد میده. پپی با شنیدن این موضوع گاوا رو برد به کارون سرا خودشم رفت پیش پادشاه. نگهبون قصد نمیخواستن بذارن بره تو چون لباساش خیلی کهنه بود. اما پادشاه خودش اومد جلو و اجازه داد که بره تو. رفت پیش پادشاه و بهش گفت سلام علا حضرت. پادشاه گفت چی میخوای؟ پپی گفت من فرمان شما رو شنیدم. دو تا گاف دارم که میخوام ببینم که میتونم از پس اون زمین بزرگ بر بیام یا نه. پادشاه بهش گفت: اگه نتونی این کارو انجام بدی میدونی چه بلایی سرت میاد؟ پی پی گفت: بله اعلی حضرت. از پسش بر میام. اگه از پسش بر نیام میدونم که سرمو از دست میدم. اما شما باید به من یه خیش بدین و یه یونجه. چون که من مسافرم و هیچی ندارم. پادشا بهش گفت گاواتو ببرد توی تحویله و بذار استراحت کنم. پپی رفت و گاواشو برداشت و برد اونجا. گاوه پی به پی می گفت: نیم دست عروفه برای من و نیم دست اولوفه برای گاوه نه کافیه. شب اونجا استراحت کردن. صبح که شد تپی خیش و چهار تا دست عروفه رو برداشت و براه افتاد. زمین واسه خودش علامت گذاری کرد. گافخاش و بست به یوغ شروع کرد به شخم زدن. مشاورای پادشاه از پنجره روبروی نگاه می کردن. به پادشاه گفتن اله حضرت شما دارین چیکار می کنین؟ نمی بینید که این پسره داره شخم تموم می کنه؟ می دخترتون رو بدین به این دهاتی؟ پادشاه گفت خب شما پیشنهادتون چیه؟ اونام گفتن سر زور براش یه مرغ بریون و یه کرات کرفت و یه بطری شراب خواباور بفرستیم. پادشاه یه نوکر فرستا اون غذاها رو برای پپی ببره. پپی همه ی زمین رو شخم زده بود. جز سه تیکه ی سه گوش که به اندازه کلاه ی کشیش بود. چون خسته بود رفت نشست تا غذا بخوره. نیم دسته اولوفه داد به گاوه پیر و یه دستم به گاوه نر. بعدش هم شروع کرد به خوردن مرغ و خوردن شراب. همه رو خورد. بعدم گرفت و خوابید گاوه پیر اولوفهش رو خورد و منتظر شد که گاوه نرم تموم کنه. در درزم گذاشت پپیم یه مقدار بخوابه. وقتی که خوردن گاوه تموم شد، شروع کرد با سومش به تکون دادن پپی. پپی تو خواب می گفت، ها. گاوه می گفت پاشو دیگه و گردنتو یعنی گردن تو از دست میدی. پپی پاشد و صورتشو شست و رو به یوق بست و خوابالود اون قطعه زمین رو تموم کرد. و دوباره شروع کرد از اول. مشاورای پادشاه با تعجب از پنجره نگاه میکردند و می چطور با خوردن اون همه شراب هنوز از پا نیفتده. ولی پپی با جون و دل کار می ساعت ده شب بالاخره کارش تموم کرد و برگشت به قصر پادشاه. رفت پیش پادشاه گفت بفرمایید علا حضرت من کارم رو تموم کردم. پادشاه بهش گفت حالا در قبالش چی میخوای؟ دو کپ طلا پپی گفت سکه طلا به چه دردم میخوره؟ من میخوام حالا زن بگیرم. خدمتکاری پادشاه اون رو بردن سر تا پاشو شستند و لباس شاهزاده رو تنیش کردن. و بالاخره دختر پادشاه با پپی ازدواج کرد. گاوه پیر به پپی گفت حالا که داری عروسی می باید منو بکشی و تموم استخونامو توی سبد بزرگ بریزی و ببری تو زمینی که شخم زدی چالش کنی. فقط باید یکی از پاهمو نگه داری و اونو بذاری زیر توشکت. گوشت همم بده به آشپز و بگو که هر طوری که درش میخواد خواد بپزه. خلاصه، کپی، سر گاو پیرو برید. هرچند که پادشاه راضی نبود که این کارو انجام بده. چون اونم دیگه به گاو پیر عادت کرده بود. اما پپی گفت نه باید بخوشیمش. اینطوری دیگه لازم نیست واسه جشن عروسیمون گوشت بخریم. به آشپزم دستور داد که گوشت گاو و مثل گوشت حیوانای دیگه بپزه. میز ناهارخوری بزرگی اونجا بود که قضاهای خوشمزدهی روش چیده بودن. عروسی برگزار شد. شب تا عروس خانم رفت به خوابه، پپی پای گاو رو زیر تشک قایم کرد. شب تا عروس خانم خوابش برد، پپی پای گاو رو زیر تشک قایم کرده بود و سبد استخونای گاو پیر رو رو دوشش گذاشت و رفت تا اونها رو با نصب توی زمینی که شخم زده بود به کاره. بعد از اینکه کارش رو تموم کرد، برگشت به قصر. زنش یکم بعد بیدار شد و گفت وای چه خوابی دیدم. انگار که یه آلم گیلاس و یه آلم سیب جلی دهنم آویزون بود. یه آلم گل سرخ و یه آلم گل یاسمن. انگار هنوز جلوی چشما من. دست دراز کرد و یه سبد از اونا چید. بعدشم وقتی بیدار شد گفت خدای من خواب نیست. این یه سیبه که من بهش دست میزنم. شوهرش هم جواب داد خواب نیست. اینا گیلاس هن که من دارم میزنم توی دهنت. همسرش هم دست راست کرد و یه گیلاس چید. پادشاه اومد تا بهشون روز بخیر بگه. وقتی که اتاق دید که پر از گل و میوه های غیرفستیه اون هم شروع کرد بخوردن. مشاورای مشاورای پادشاه جلوی پنجره رفتن و نگاهشون به زمینی افتاد که پپی اون رو شخم زده بود. پر از درخت بود. تعجب کردن. پادشاه ها صدا کردند و بهش گفتن. نگاه کنید. الا حضرت. اونجا تو زمینی که پپی شخم زده اصلا درختی نبود. پادشاه هم نگاه کرد. آره شما راست میگین. باید به اونجا بریم ببینیم چه خبره. سوار کالسکه شدند و رفتن به زمینی که پپی اونجا رو شغم زده بود. درخت های لیمو، انگور، گیلاس همشون پر بودن از میوه. پادشاه یکم از میوه چید و با خوشحالی به قصرش برگشت. پادشاه دو تا دختر دیگه هم داشت که با پسرای پادشاه ازدواج کرده بودند. دخترا وقتی موضوع رو شنیدن از خواهرشون سوال کردن که همسرش چجوری این باغ رو تهیه کرده؟ عروز خانمم جواب داد من از هیچی خبر ندارم. خواهرش بهش گفتن تو دیوونه شدی ازش بپرس که چجوری تونسته این کار انجام بده. بعدش هم باید به ما بگی. شب که شد عروس شروع کرد به سوال کردن از همسرش. پپیم پی هم همه ماجرا رو براش تعریف کرد. روز بعد عروس موضوع رو برای خواهرش گفت. اونام هم برای همسراشون تعریف کردن. یه روز که همه پیش پادشاه جمع شده بودن، دامات ها به پپی گفتن. بیا با هم یه شرط ببندیم. پپیم گفت چه شرطی؟ شرط اینکه ببینیم میتونیم بگیم که شما چجوری تونستید اون درخت‌ها رو توی اون زمین یه به این پربار و پرمیوه کنید؟ هم گفت خب شرط می‌بندیم. اما با چی شرط می‌بندیم؟ دامادام گفتن خب به شرط هر چی که شما اینجا دارین. اگر که ما موضوع رو برا تعریف کردیم هر چی که داریم مال ما میشه. پپی قبول کرد. رفتم پیش یه مهزردار رو قرارداد و تنظیم کردن. اون وقت دامات ها هم هر چی رو که همسراشون بهشون گفته بودن برای پپی تعریف کردن. از اونجایی که پپی به همسرش اعتماد داشت با خودش گفت پس کی میتونه به اونا گفته باشه؟ آفتاب؟ پپی مجبور بود که همه یه چیزهایی که داره به دامادها بده. بعد هم مثل گذشته گداو و گشنه با لباس دهاتیش راه افتد و رفت. رفت و رفت تا رسید به یک کلبه. در زد. پیرمردی از پشت در گفت کیه؟ پپی هم جواب داد لطفا در رو باز کنید. دنبال چی میگردی؟ پپی با پیرمرد صحبت کرد و بهش گفت میتونیم به هم بگین آفتاب از کدوم در میاد. ببین پسرم، امشب و همینجا بخواب. تا فردا صبح من تو رو بفرستم پیش یه پیره مرد دیگهی که از پیرتره. تپی شب رو اونجا استراحت کرد. صبح روز بعد پیرمرد مرد یه تک نون بهش داد و پپی هم ازش خداحافظی کرد و رفت. تا رسید به کلبه پیرمرد مرد که ریشش تا سر زانوهاش بلند بود. پپی به پیرمرد سلام کرد و گفت میشه به هم بگین آفتاب از کدوم بردر میاد؟ پیرمرد گفت ببین پسرم برو تا یه پیره که از من پیرتره ماجرا رو برای تعریف کنه. پپی اجازه مرخصی گرفت و رفت. به کلبه دیگه ای رسید و در زد مرد دیگه ای در رو باز کرد و بهش گفت دنباره چی می‌گردی؟ پپی هم طبق معمول بهش گفت میشه به هم بگین آفتاب از کدوم بردر میاد؟ پیره گفت ببین پسرم. شاید به اونجا برسی ولی گوش کن ببین بهت چی میگم. این سنجاقو بگیر. صدای قررش یه شیر رو میشنوی. وقتی که شنیدی فریاد بزن. بهش بگو رفیق پیرت بهت سلام میرسونه. این سنجاق برای درابردن خار از براتون فرستاده. در عوض باید کاری کنی که تا من بتونم با آفتاب صحبت کنم. تپی همین کار انجام داد. خار رو از پنجه شیر درابرد و شیرم بهش گفت شما زندگی منو نجات دادی. شیرم در عوض تپی رو تا اونجایی که دریای بزرگی با آب سیاه داشت راهنمایی کرد. بهش گفت آفتاب از اینجا در میاد. اما قبل از آفتاب یه مار میاد. تو باید بهش بگی رفیق شیرت بهت سلام میرسونه. در عوضش شما باید یه کاری بکنید تو من بتونم با آفتاب حرف بزنم. شیر از پپی خداحافظی کرد و رفت. همون لحظه پپی دید که آب به تلاتوم افتاده. مار اومد جلو. و پپی همونطور که شیر بهش گفته بود کلمه به کلمه بهش گفت. مارم بهش گفت زود به آب و پشت سر من قایم شد. وگرنه یعنی عشقی آفتاب تو رو می سوزونه. پپی هم کارو انجام داد. آفتاب در اومد و مار گفت پپی برو قبل از اون که آفتاب بره هرچی که باید بهش بگی رو میتونی بهش بگی. تپی وقتی آفتاب رو دید بهش گفت آهای آفتاب خائن فقط تو میتونستی به هم نارو بزنی. آفتاب گفت من؟ این من نبودم که بهت نارو زدم. میدونی کی بود؟ زنت بود که رازت رو بهش گفته بودی. تپی وقتی شنید از آفتاب مذرت خواهی کرد. پپی با ناراحتی به آفتاب گفت، اما فقط یه لطفیه که تو میتونی در حقم بکنی. اگه نیم ساعت بعد نصف شب غروب کنی، تا من بتونم دارایی اون پست بگیرم خیلی خوب میشه. آفتابم گفت، خیالت راحت کشه. من این لطف در حقت میکنم. پپی ازش تشکر کرد و اجازه گرفت و برگشت خونه زنش براش آبگوش درست کرده بود. پپی وقتی خستگی در کرد و کمی حالش جا اومد دامادای پادشاه رو صدا کرد. پپی به دامادا گفت حالا یه شرط دیگه با هم میبندیم. دامادان بهش گفتن سر چی میخوای شرط ببندی؟ تو که چیزی نداری؟ پپی هم گفت من سر گردنم شرف می بردم و شما هم سر دارایی من. دامده قبول کردن. گفتم باشه پس تو سر گردن تو ما هم سر دارایی تو. حتی دارایی خودمون. اما این چه شرطیه؟ پپی پرسید، آفتاب کی غروب می دامادا بین خودشون گفتن. دیوونه شده. حتی نمیدونه آفتاب کی غروب میکنه. چطور مگه؟ خب ساعت نهانیم غروب میکنه دیگه؟ پپی گفت اما من میگم دوازدونیم غروب میکنه. خلاصه. شرط بستن. مشغول تماشای آفتاب شدن. ساعت نهانیم آفتاب داشت میرفت پایین. که پپی بهش گفت آهای آفتاب این قولیه که به من داده بودی؟ آفتاب یادش اومد و به جای قروب اونقدر کش داد و کش داد تا نیم ساعت بعد نصف شب شد. پپی به دامادا گفت بهتون نگفتم. دامادام گفتن حق داری. و همون لحظه فوری دارایی پپی رو بهش برگردوندن. پپی بهشون گفت خیلی خوب. خاله من میخوام معرفت یه آدم دهاتی رو بهتون نشون بدن. چون همیشه اون دامادا پپی رو دهاتی صدا میکردن. خلاصه، پپی دارایی اونا رو بهشون پس داد. بهشون گفت من مال مردم نیستم، مال خودم فقط میخوام. بعد از اون ماجرا پپی زندگیش رو با همسرش شروع کرد. پادشاه در آغوشش گرفت و تاج رو از سر خودش برداشت و گذاشت روی سر پپی. اون لحظه دامادای دیگه خون خونشونو رو میخورد. اما به روی خودشون نمی بعد از اون ماجرا پپی و همسرش با راحتی و خوشحالی با هم زندگی میکردن. پپی از گاف گافچرونی رسیده بود به پادشاهی.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 همه و همه و همه در کانادای ترگرامیه هزار افسان داستان‌های افسانهای صوتی atsain مهران دوستی